اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحق به نام خداوند بخشنده بخشایشگر روز رستاخیز است که مسلما واقع می شود ملحق چه روز واقع شدنی؟ و ملحق و تو چه میدانی آن روز واقع شدنی چیست؟ قوم سمود و عادم بالقارعه قوم سمود و عاد عذاب کوبنده الهی را انکار کردند ونتیجه شومش را دیدند فاما ثمود فاهلكوا بالطاغيه اما قوم ثمود با عذابی سرکش هلاك شدند واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتيه و اما قوم عاد با توند بادی تقیانگر و سرد و پر صدا به هلاکت رسیدند سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام حسومات فتر القوم فیها صرعا كأنهم اعجاز نخل خواویه خداوند این توند باد بنیان کنرا هفت شب و هشت روز پی در پی بر آنها مسلط ساخت و اگر آنجا بودی میدیدی که آن قوم همچون تنهای پوسیده و تو خالی درختان نخل در میان این تند باد روی زمین افتاده و حلاک شدهاند آیا کسی از آنها را باقی میبینی؟ و فرعون و من قبلا و المعتفکات بالخاطئه و فرعون و کسانی که پیش از او بودند و همچنین اهل شهرهای زیر و رو شده قوم لوت مرتکب گناهان بزرگ شدند رسول و با فرستاده پروردگارشان مخالفت کردند و خداوند نیز آنها را به عذاب شدیدی گرفتار ساخت اِنَّا لَمَّا طَغَلْمَا اُحَمَلْنَاكُمْ فِي و هنگامی که آب تقیان کرد ما شما را سوار بر برکشتی کردیم لِنَجَعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا اُذُنٌ وَعِيَةِ تا آن را وسیله تذکری برای شما قرار دهیم و گوشهای شنوا آن را دریافت و بفهمد فاذا فا نفخ في الصور نفخه واحده اینکه یک بار در سور دمیده شود و حملة الارض والجبال فدك دکه واحده و زمین و کوها از جا برداشته شوند و یک بار در هم کوبیده و متلاشی گردند در آن روز واقعه عظیم روی می دهد و انشقت السماء فهی یوم و آسمان از همی هم شکافت و سست می گردد و فرو می والملك عَلَىٰ اَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عرش رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ اِذٍ فرشتگان در اطراف آسمان قرار می گیرند و آن روز عرش پروردگارت را هشت فرشته بر فراز همه آنها حمل می کنند تعرضون لا تخفى منكم خافية. در آن روز همه گی به پیشگاه خدا ارزه می شوید و چیزی از کارهای شما پنهان نمی ماند فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ فَيَقُولُ هَا اُمُقْرَأُوْ كِتَابِيَهِ است. کسی که نامه اعمالش را به دست راستش دهند، از شدت شادی و مباهات فریاد میزند که ای اهل محشر، نامه اعمال مرا بگیرید و بخوانید. من یقین داشتم که قیامتی در کار است. و به حساب اعمالم میرسم فهو في عيشه راضيه او در یک زندگی کاملا رضایت بخش قرار خواهد داشت في جنته عاليه در بهشتی عالی که هو دانيه زمینی در دسترس است گلو واشربوا اصل بما اصل فتتون ف عام خاالیه و به آنان گفته می شود بخورید و بیاشامید گوارا در برابر اعمالی که در ایام گذشته انجام دادید. و اما من اوتی کتابه شماله فیقول فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیه اما کسی که نامه اعمالش را به دست چپش بدهند میگوید ای کاش هرگز نامه اعمالم را به من نمیدادند ولم ادر ما و نمیدانستم حساب من چیست يا لیتها کانت القاضیه ای کاش مرگم فرا میرسید ما ما عنی مالیه مال و ثروتم هرگز مرا بی نیاز فلك عنی سلطانی قدرت من نیز از دست رفت خذوه فغلوه او را بگیرید و در بند و زنجیرش کنید. ثم الجحیم صلوه سپس او را در دوزخ بیفكنید ثَّ في سلسلة ذعها ذرعها س لذِرا فَصلك بعد او را به زنجیری که هفتاد است ببندید إَّ كان لا يؤمِن بالله العظيم چرا که او هرگز به خداوند بزرگ ایمان نمی آورده و, و همگز مردم را بر اطعام مستمندان تشویق نمی نمود له هنا حمیم. از این رو امروز هم در اینجا یار مهربانی ندارد ولا طعام إلا من نه ونتعامي جز از چرک و خون لا ياكله الا الخاطئون غذایی که جز خطاکاران آن را نمی خورند فلا انقسم بما تصيرون سوگند به آنکه میبینید و ما لا و آنچه نمی بینید اینهو لقول رسول کریم که این قرآن گفتار رسول بزرگواریست و ما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون و گفته شاعری نیست اما کمتر ایمان می آورید ولا بقول كهن قليلا ما تذكرون و نه گفته کاهنی چند کمتر چند كمتر متذكر مي‌شوييد نازل من است كه از سوی پروردگار عالمیان نازل شده است ولو تقول علينا بعض الأقاویل اگر او سخنی دروغ بر ما میبست لأخذنا منه باليمین ما او را با قدرت میگرفتیم ثم لقطعنا منه الوتين سپس رگ قلبش را قتع میكردیم فمین کنین من أحدین ن حجزین و هیچ کس از شما نمیتست از مجازات مانع شود و این حلتگیرات لیل و آن مسلما تذکری برای پرهیزگاران است و اینا أن نعلم یعنی مکذبین. و ما میدانیم که بعضی از شما ان را تکذیت میکنید. و اینه و ل و آن ما یه حسرت کافران است. و اینه و اليقین. و ان یقین خالص است حال که چنین است به نام پروردگار بزرگت تسبیح گویه